اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از والسلام و السلام على نبینا و آله تاخری خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت بهطور کامل برخوردار باشید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گونه گذند و بلایی هم به دور مالید بحث ما در امر تمام شد و ما تعریف امر معنای حقیقی و معانی مجازی اون رو به طور کامل برای شما بیان کردید حالا امروز قصد داریم که معنای نهی رو برای شما بگیم چون نهی امیناً مشابه امره تو بعضی از کتب صرفی حتی نهی رو امر منفی اسمش رو گذاشتند ابتدا من تعریف نهی رو برای شما میگم بعد نهی حقیقی رو از روی تعریف میفهمیم بعد معانی مجازی نهی فهمیده میشه که هر چیزی که این تعریف به معنای صدق نکنه میشه معنای مجازی که با قرینه فهمیده میشه و بعد هم سیغه هایی که نهی در زبان عربی به شکل اونها میاد برای شما بیان میکنی یعنی مشابه بحث امرو. تعریف نحی رو بنویسید ان نحیو ان نحیو میگیم الف داره یعنی نحیه که استلاحه نحیه در علم بلاغت، ان نحیو طلب المتکلم من المخاطب ترک فعل ترکل فعل علاوه وجه الاستعلاء علاوه وجه الاستعلاء و لزوم و لزوم اگر اینو با تعریف امر مقایسه کنیم می‌بینیم که فقط یک کلمه بهش اضافه شده اونم کلمه ترک اینجا طلب المتكلم من المخاطب الفعل علاوه بر استعلاء و لزوم اینجا ترک الفعل علاوه بر استعلاء و لزوم یه متن تو کتب بلاغی خیلیها به جای ترک الفعل نوشتند الکف عن الفعل الكف انلفل یعنی کف و هو کف یعنی دست کشیدن یعنی متکلم از مخاطب میخواد دست کشیدنش رو از کار یا بگو ترک کردن اون کار رو یکیه پس اگر دیدید به جای ترک الفعل الکف و الفعل نوشته، هیچ فرقی نداره پس نه هیچیه طلب متکلم از مخاطب ترک کردن کاری رو یا دست کشیدن از کاری اونم علاوه بر از این جنبه که من بالاترم و دستور میدم و لزوم و اگر تو این کار هم نکنی مورد معاخظه منی و من با تو برخورد میکنم این میشه نحیه این میشه نحیه حقیقی نحیه حقیقی پس نحیه حقیقی این شد متکلم از مخاطب چیزی رو میخواد آه و اون چیز اینه که این کارو ترکش کن طلبیه دیگه این طلبی ترک کاری رو میخواد طلب میکنه. و میگه من بالاترم به میگم و واجبم هست که این کار رو انجام بدم. مثلا بیاید توی امثله کتاب امثله کتاب قال تعالی خداوند تعالی فرموده سه نحی انعخذ مالیتیم مال به غیر الحق، به غیر حق. بغیر حق. قال تعالی فه نهی خدای تعالی فرموده در نهی کردن که نهی میکرده خدا بندگانش رو نحی میکرده از چی؟ ان اخذ مال یتیم این که بگیرن مال یتیم رو به غیر حق بدون اینکه حقشون باشه خب یه موقع هستش که طلب داره میگیره یه موقع از مال یتیم رو میگیره تا قیم اون باشه مال یتیم هم بین نره اونا حقه اما غیر حقه ظالمانه مال یتیمی رو قصد میکنه خب خدا این رو نه کرده خب کار حرامیم هم هست دیگه اگر هم انجام بدی خداوند محافظه میکنه خداوند نسبت به بندگان خودش چنین بود. گفته بالاست خدا و بندگان و اینند دستور داده چی میفرماید اینطور میگه ولا تقربوا مال یتیم لا تقربوا ناهیه دیگه که لا اومده نون نون اعرابی حذف شده تقربو نبوده لا تقربوا مال یتیم هرگز به مال یتیم نزدیک نشیده این خیلی خیلی تأکیدش ها نگفته لا تحقید و مالیتی مالیتیم رو نگیرید. ها گفته اصلا نزدیکش نشید. چون ممکنه که به قول خودمون وسوسه شید. بعضی از کارها وسوسه انگیزه. میگه لا تقرب و مالیتی الا بلتی این بلتی یعنی به طریقت لتی الا بلتی یا احسنه مگر به اون ای که مگر به اون ای که احسنه برای اون یتیم بهتره یعنی اگر شما اون کار بکنید مالش حفظ میشه شما قیمش هستی الا به لطیه احسن پس به هیچ طریقی یعنی اینطوری بوده استثنان مفرقه دیگه لا تقربه ما لطیه یتیم به طریقتن به هیچ طریقه مال یتیم رو نگیرید الا به لطیه احسن مگر به شکلی که خوبتر برای او مگر به شکلی که برای او حسن دارد خب حالا اگر یک کسی آمد و مال یتیم رو به ناهر گرفت خداوند چه میکنه؟ با او برخورد میکنه این نهیه است دیدید مثال دوم رو ببین و قالف نهی عن قطع الانسان رحمه و خداوند تعالی نهی کرده از اینکه انسان قطع کند رحم خودش رو قطع رحم جنایه از این تعبیر از اینه که انسان با کسانی که با او خیشی دارند قطع کند رفت آمدش رو خداوند نهی کرده از این کار و وقالف نهیم قتل انسان رحیمه خب چه فرموده اینه ولا یعتله اعتلا یعتلی اعتلاعن یعنی حلفه یعنی قسم بخور. یعنی قسم خورد لا یعتله یعنی لا یحلف لا یعطلی بوده اون لاملفل به جزمی ساقد شده لا یعطل لا یحلف اول الفضل منکم اول منکم و سعته. از سعه ات به جای فضله علو فائل یعنی قسم نخورد، صاحبان فضل، اونایی که به مردم چیزی میدن و سعه و دستشونم بازه یعنی آدمی که تو کار خیره دستشم بازه منکم این منکم حال است از برای علو در حالی که از شما مؤمنینه. کسی که از شما مومنین است دستش بازه و دست خیر هم داره قسم نخورد آ قسم نخورد بچی ان یعطو این ان یعطو یعنی ان لا یعطو ان لا یعطو گای لا لای نافیه به قرینه هست میشه. لای نافیه به قرینه هست میشه قسم نخورد این که لایوتو عطا نمی کند اول القربا به خیشاوندان خودش چیزی این اون لایوتو اول القربا مفعول دومش افتاده دیگه یوتو یعنی لا لایوتو اول القربا شیاه معناش چیه؟ یعنی قسم نخورد او کسی که دستش به دهنش میرسه و فضل و کرم داره از شما مؤمنین قسم نخورد بر اینکه من به خیشاوندان خودم هیچ کاری نمیکنم، هیچ چیزی نمیدم. دارم با اونا کاری نداره. دیگه بعضی میگه من پشت دستم رو داغ کردم بخوام کمک بکنم میگه نه نباید همچون قسم بخوره اصلا و ابدا قسم نخورید تو دوچو پس ما رو نه کرده از چی از اینکه قسم بخوریم در این که به خیشه خودمون به فامیل خودمون کمک نمیکنیم که بعضیا چنین بوده این لا یعطله یه معناش یعنی لا یحلف که این پایینم گفته نگاه کنید گفته یعطله یعنی یحلف یعنی لا یعنی لا و وسع الغنم یه معنایش اینه که لا یعتله، یعنی لا یحلف اون موقعی لا هم بعد از ان هست شده بوده ان لا یعطل قسم نخورن بر اینکه ندهند به خیشاوندان چیزی اما بعضی ها قائلند و اینم درسته که اعتلا یعتلی یه معنای دیگه هم داره قصر یغصر با صاد و قاف قصر رو یعنی کوتاهی که از تقصیر لا یعطله یعنی لا یغصر اون موقع دیگه لا هم حذف نشده معنای میشه کوتاهی نکنند اول الفضل منكم غصا اون کسانی از شما که دستشون بدهنشون میرسه کوتاهی نکنند در این بدهند به اول القربا چیزی رو کوتاهی در اینکه به اول القربا چیزی بدهند نکنند دیگه نیاز به لا هم نیست علیه حال خداوند نه کرده از اینکه قسم بخوری من سله رحم نمی‌کنم به خیش خودم چیزی نمیدم. یا نهی کرده از اینکه کوتاهی کنیم در اینکه من چیزی نمیدان درستو نه کرده از این. خب هر دو هم نهی حقیقیه شرایط نهی حقیقی رو هم داره و خداوند تعالی گفته به بنده خودش و واجبم هست این هیچ به قول خودمون مولا ارزش نمیره که اگر این کارو کنی که نهیت کرده حتما و حتما خداوند با تو برخورد خواهد کرد خب متن رو نگاه کنید دیگه ساده است البحثو ازا تعملت امثلت ال اولا رعیت کلن منها یشتبه رو علا سیقته. اگر نگاه کنید به گروه یک می‌بینی که مشتمل از برسیقه هایی که یطلب و به ها الکف و انفه طلب شده که دست کشیده بشه از کاری متکلم طلب کرد از مخاطب که از کاری دست بکشه کن و ازا انعمتن نظره لعیت طالب الکف فیها اعظم و اعلا من من طلبمه اگه خوب دقت کنی میبینی اون کسی که طلب کرده که دست بکشه از کار طلب کننده عظیمتر و والاتر است از اون کسی که ازش طلب شده خدا از بنده خودش استعلاف است. فعی نت زیرا که طالب یه امثلت حاضر طالفه الله زیرا طالب خداست سبحانه و تعالی و المطلوب با من هم هم عباده و مطلوب و من اون کسی که ازش طلب شده بندگانن و حاض و نه حقی این نهگه و ضا تعمل تا او و اگر دقت کنید تو سیغش آ خب این را فعلا داشته باش مثال دومم که عین همین من برات خوندم که قالف نیه انقدر الانسان وه و لای عاطله یعنی لا و قر لای هله، اون اولی املا تقره بود یعنی خطاب به بندگان خودش که اصلا و ابدا نزدیک نشد این مبهت رو دیدید حالا قواعد رو نگاه کن تو قواعد میگه اننهیو او خب همونطور حالت خلاصه نوشته غیر اونی که من گفتم ان نحی و تلب و کف طلب کردن دست کشیدن از کار، علاوه چل استهلا بر وچه استهلا لزوم رو هم نگفتیم حالا از های نهی چند تاست یگر یادتون باشه سیغه های عم تا اصلی بود دوتا هم من جمله اسمی و فعلیه که منباب مبالغه از اون اراده عم شده که بیان کردم شد شیشتا اینجا دو تا بیشتر نیست دو تا بیشتر نیست سیغه اصلی نهی عبارت است از فعل مزارع با لایناهیه سیغه اصلی نهی عبارت است از فعل مزارع با لایناهیه که مثل همین دو دوتایی که دیدید لا تقرب و لا یعتله و سیغه فرعیش فعل مزارع با نافیه. فعل با بالای نافیه درست شد؟ که این مبالغش بیشتره یه موقع من میگم نگو این حرفو نهی میکنم. یه موقع میگم نمیگی نمیگی ببینید چقدر تأکیدش بیشتره تو قرآن داریم لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله این لا تعبدون بنابر اون که تو ذهنم هست آیه لا تعبدون الا الله خب این لا تعبدون الا الله یعنی لا تعبدوا الله اما تاکیدش چیه بیشتر لا تعبدون الا الله یعنی شما عبادت نمیکنید غیر خدا پس سیغش اش یه دونه بیشتر اصلی نیست فعل مزاره با لای... لا نهیه اما یه دونه هم فرعی دارد که برای مبالغه میاره فعل مزاره با لای نافیه فعل مزاره با لای نافیه الان این دوتا سیغاه های اصلی بود درست شد لا تقربو که نون رو حذف کرده بود لای نهی لای اطله که لام نامولفل رو حذف کرده بود به جزمی درست شد لای اطلی بود توی قواعد نگاه کنید میگه لن نهیه صیغتون واحدتون یا المزار و معلا ان نهیه سیغه بیشتر نداره یعنی سیغه اصلیش اونم مزاره با لا نهیه و ما گفتیم و صیغه تون اخرى و یه سیغه دیگه هم داره الفعل النل مزار و معلا ان نافیته فعل مزاره با لا که میاد و قصد مبالغه میشه و به قصد مبالغه آورده میشه آه. یعنی اگر همینجا خداوند به جای لا مال ماللیتی فرموده بود لا تقربون ماللیتی تحکید و مبالغه بیشتر شد یعنی شما نزدیک نخواهید شد یعنی انگار من میدونم که شما نزدیک نمیشید و نیاز به نهی نیست شما خودتون این کار نمی کنید مثل اینکه ما گفتم یه بار به یکی میگیم نگو این حرفو. این نهیه یه بارم میگیم نمیگی این حرف رو این نمیگی یعنی من میدونم نیازه به نهی نیست این تحکیدش چیه؟ بیشتر؟ این یه سیغه دیگر دارد عبارت هست از لای نافیه با فعل مزاره به جهت مبالغه. اینم یاد کرد مثال سوم را نگاه کنید باز نهی است. و قالف نهی ان اتخاذ بتانت سور خداوند تا حالا فرموده در نهی کردن از این که انسان بگیرد بتانت سوء بتانه اصلش یعنی آستر اونی که به بدن انسان میچسبه آن به زیرین اینجا منظور از بتانت سو بتانه یعنی دوستی که همراهی که شیشتون به با آدم باشه آه مثل لباسی که به تن آدم چسبیده نزدیکتر این چیزه به آدم محرم انسان بشه و کسی باشه که دیگه همه چیز انسان رو بدونه خدا نه کرده از اینکه شما بگیرید افرادی رو به عنوان مهارمه خودتون به عنوان دوست نزدیک خودتون ولی اونها سوء باشن بد باشن بعد سوء رو هم معنا میکنه سوء رو معنا میکنه خداوند به این که همراه بد دوست بد اونیه که اونیه که از جنس شما مومنین نباشه یعنی مومن نباشه اون میشه به سو پس خدا گفته از غیر خودتون از مسلمانان نباشد آه یهودی نصرانی مشرکین آه دیره اینها رو به عنوان محرم اسرار خودتون نگیرید نه اینکه با اینا معامله نکنید رفت آمد نکنید دشمنی کنید. نه، ممکنه در جامعه زندگی هم بکنه اما اینکه شما بیایی همه اصرار زندگیت رو به او بدید و مشاور زندگی شما بشه، مشاور حکومت شما بشه همه کاره این مطلب بشه نه این کارو نکنید. میگه یا یاحل این آمون آهای ممنین. لا تتخذو تن من دونکم نگیرید دوست و همراهی از غیر خودتون نون به معنای دیره مندونه چرا, چرا نگیرید؟ این استناف بیانیه چون لا یعلونکم خبالا خبال یعنی فساد زیرا اینها دریغ نمیکنند در مورد شما فساد یعنی اگر یه جایی پاش برسه آه، شما رو می فروشن. پس سعی کنید کسانی رو که به عنوان محرم خود می گیرید، کسانی باشند که از جنس خودتون باشند ارق دینی داشته باشند مسلمان باشند مومن باشند تا شما مجبور نشوید اسرارتون رو بعدا دست دیگران داشته باشید یا ایها الذین آمنو لا تتخذو لا هستو فعل مزاره لا تتخذو بتانتن من دونکم صفت بتاناست یعنی دوستان محرمی از غیر خودتون نگیرید این لا یعلونکم خبالا کم مفعول اول خبالا مفعول دوم این جمله استیناف بیانیه یعنی زیرا که کوتاهی نمیکنند دریغ نمی در مورد شما فساد پاش برسه شما رو می فرشن. در مورد شما در فساد دریغی نداره پایین میگه لا یعطوی لا یعلونکم خبالا یعنی لا یغسرون فی افساد شعونکم یعنی کوتاهی نمی در تباه کردن اوضاع شما دستشون برسه گفتم شماها رو خواهند پس نگاه کنی سه تا فیل بود لا تقربو لا یعتله لا تتخذو فعل مزاره با ناحیه در هر سه سموزه نهی حقیقیه چون خدا از بنده خودش خواسته که این کارها رو نکنن و اگر این کارها رو هم بکنن حرف گوش نکنن مورد محاخزند لذا نحیها نه نهی حقیقیه یعنی در مورد اول اگر مال یتیم رو به ناحق بخورند خداوند محافظه میکنه در مارهی دو دومی اگر قسم بخورند که کار خوب نسبت به خیشاوند نمیکنند به خیشاوند چیزی نمیدن خدا برخورد میکنه یا کوتاهی کنند در حق خیشاوند خدا برخورد میکنه در مورد سومی هم اگر برند از غیر خودشون کسانی رو به عنوان محرم اصرار بگیرند خداوند نه میکنه میگه چرا شما چنین کردید شما نباید با غیر مومنین مراوده شیشتونگی داشته باشید که اونها بخواهند بر همه امور شما سوار باشد حالا تو بحث نگاه کنید میگه انظر زور ازن علت طائفت ثانیه نگاه کن به گروه نه توی اون تیچه قبل و, و ایزا تعملت و ایزا تعملت سیغته و فی کل مثال این یرد و علیک وجدتها واقعیدتا لا تتغییر اگر نگاه کنی میبینی سیغه یه دونه بیشتر نیست لا تتغییر فعل است با فعل مزار است با لای ناهی و هیه المزار و المغروم به لای ناهیته که ما گفتیم این یه دونه سیغه اصلیه یه دونه هم غیر اصلی داره که گفتیم فعل مزاره با لای نافیه که اون تأکیدش چیه بیشتر حالا نگاه کنید توی قواعد قواعد توی قسمت چلو دو میگه قد تخرجو قد تخرجو یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات قد تخرجو معانی مجازی نهر قد تخرجو سیغت و نهیه ان معناها الحقیقی، حقیقی الى معان اخرى گاهی اوقات خارج میشه سیغه نهی از معنای حقیقیش الى معان اخرى به معانی دیگر از معنای حقیقیش میره بیرون معنای حقیقیش چی بود اون که گفتیم طلب المتکلم من المخاطب طلب المتکلم من المخاطب ترک الفعل یا عن الفعل علاقه چلسته و از معنای اصلش خارج میشه به معانی دیگری. این معانی دیگر کجا فهمیده میشه اینجا میگه نگاه کنید من استفاده از سیاق و قرائن الاحوال که این معانی دیگه از سیاق فهمیده میشه یعنی قرائن لفظی و قرائن الاحوال و قرینه های ها یعنی ما اون معانی مجازی رو از قرائن میفهمیم تو استفاد و استفاده میشه من از سیاق و قرائن احوال حالا یکی یکی میگه چه دعا حالا دعا کی میشه موقع که پایین به بالا مثل این که تو آب خوندیم مثلا ما تو قرآن میگیم ربنا لا تو آخذنا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اخطئنا ربنا لا تواخذنا پروردگار ما لا تواخذنا معاخذه نکن ما رو این اختعنا این نسینا او اختعنا اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم خدا یا نگیر خوب این ربنا لا تواخذنا این نسینا او اختعنا لا تواخذنا ما کنه میخوایم نهی کنیم آ احیی از معاخزه بلکه که خدا یا خواهش میکنیم دست دعا بلند کردیم که ما رو معاخزه نکنیم که دعا ولی التماس التماس یعنی دوتا همتا مثل هم مثل اینکه که یکی کنار و یکی نشسته درست شد این داره مطالعه میکنه به اون میگه یا فلان کرد فلانی حرف نزن، صحبت نکن درست شد؟ اینجا خون منظورشی خواهش میکنم صحبت نکن نهیش نمیکنه التماس تمنی تمنی یادتونه گفتیم که طلب از غیر زبل عقول مثل اینکه که بازی کنه میگه که یا سماع لا تومتری ای آسمان نبار یعنی ای بارو میشه نیایی یعنی کاش نید همه نید ارشاد نصیحت درست شد نصیحت میکنه وجوب توش نیست نظام توش نیست توبیخ آه باییو توبیخ میکنه نه میکنه توبیخ میکنه مثل یک کسی با باید دستتو تو نکنه این نه نباییو جلوی مردم اینو میگه یا مثلا توبیخ داره میکنه آ؟ معیوز کردن حالا میخونیم مثالش تهدید تهدید میکنه درست رو میگه حرف رو گوش نکنی یا میگه حرف رو گوش نکنی خب این داره در واقع نحیش میکنه تهدید داره تحقیر گای آقا هستش که با نحی کسی رو تحقیر میکنه اون رو کوچکش میکنه کوچک کردن کسی تحقیر اینها معانی مح... خودمون معانی مجازی که هست البته آیا همین معانی مجازی همین ها هستن که ما تو رو نه نه مثلا شما اگر یک کسی داره مسابقه میده میده اینا که نشستن تشویر میکنن میگن بودو بودو یا میگن خسته نشو خسته نشو ها نهیش میکنن در درن، تشویق میکنم، میکنن دیگر. معانی دیگری هم هست شما وقتی مطالب رو فهمیدید متوجه میشید که اگر معنای حقیه امر نبود یا معنای حقیه نه نبود ما میریم سراغ معنای مجازی و معنای مجازی رو با قرینه ما میفهمیم است که قاعده کلیست حالا بیایم سر معانی مجازی چهار نگاه کنید دعاست من یه دونه مثال زدم ربانا لا تو آخذنا ان نسینا او اخطانا ربانا لا تو آخذنا ان نسینا او اخطانا این دعاست چون ما داریم از خدا میخوایم که خدا ما رو بگید مورد معاخظه قرار نده دعاست. و, قالم قا و قالم مسلم و قال مسلم بن الولید فررشید رشید مسلم بن ولید در خصوص هارون رشید اینطور طور گفت در مورد میگه لا یعدمن که اهل اسلام من ملکن اقم تقول لته من بعد تعوید من بعد تعویدن یعنی لا یعدم یعنی از دست ندهد از دست ندهد چن تورا هما یعنی غرقگاه دژ اوغگاه و قلعه اسلام تو را از دست ندهد یعنی در واقع از دست ندهاد من ملکن این من من بیاانی از این ملک تمیزه از جهت پادشاه بودن یعنی تو پادشاه اینها باشی انشاءالله الله اسلام هیچ وقت تو را از دست؟ میگه دژ اسلام قلعه اسلام تو را از دست ندهد نه کرده از اینکه دژ اسلام قلعه اسلام او را از دست بده گفته نباید از دست بده تو رو از جهت پادشاه بودن یعنی تو پادشاه خوبی هستی برای اینا مبادا قلعه ای اسلام تو را از دست بده چرا؟ چرا پادشاه خوبیه میگه عمت قلته تو قله این اسلام را برافراشتی من بعد تعویدن بعد از اینکه کج شده بود کجش کرده بودند عود یعنی کجی اوود یعنی کج کرد بعد از اینکه ادعی پیدا شده بودند اسلام رو به انحراف کشیده بودند کجش کرده بودند، ها تو اومدی اون را صاف و صوف کردی سر جاش آوردی پس قلعه ای اسلام دژ اسلام تو را از دست ندهد ادهی قلعه او را کج کرده بودند، تو آمدی و او را صاف کردی درست کردی این اغمت قلعه او مثل اون لا یعلونکم خبالا استیناف بیانی زیرا تو قله اسلام رو برف راشتی بعد تعویدن بعد از اینکه که شده بود پایین نگاه کنی قلعه تو کلش اینا قلعه هر چیزی اوجش اون نقطه باداش و تعوید از تعویج عوج و عود یعنی کجی اوجه و اوده یعنی کج کرد مایل ساخت میگه بعد از اینکه اونها قله اسلام رو کج کرده بودن داش میریخ تو اومدی او رو این قلعه اسلام رو که اونها داشتن میخاوندن و کجش کرده بودن تو برگردین سرجاش صافش کردی منظور این که اسلام رو به اون جایگاه واقعی خودش رسونده پس بنابر این قلعه اسلام دیج اسلام हेमा راه اسلام تو رو از دست نباید بدهد از جهت پادشان خب یعنی چیه دعا میکنه انشالله که اسلام قدر تو رو بدونه و تو رو از دست خب دوست شما دارید این رو میبینید تو مت نگاه کنید مت بحث میگه اون سور ازن الات تای فتسانیه تجد انن نهیفی جمعه ها میبینی که نه در تمام این حال لم فی معناه الحقیقی. استعمال نشده در معنای واقعی خودش، حقیقی خودش. معنای عقیقی چی بود؟ هو طلب من الالالعدنا. اون عبارت از این بود که بالاتر از تر بخواد دست از کاری بکشه، اونم بر سبیل استعلاء و تمسون. و ابن ماید الله معان نخرا بلکه تو این سیغه ها دلالت بر معانی دیگری داره میکنه یدرکوها از سامه این معانی دیگر رو مخاطب درک میکنه من از سیاق از لفظ سیاق و قرائن الاحوال و قرائن حالیه ها گاه اوقات از سیاق قرینه لفظی گاه اوقات قرائن الاحوال قرینه های حالیه قلاص قرینه می آید و این معانی را بگو معانی مجازی را برای ما می آورد. ما به کمک قرینه اون رو می فهمیم و این نمایدل معان اخرى یدرکوها از سام اومن از سیاق و حالا مثال می زنم همین مثال که خوندیم فموسلق اپنالو آقای مسلم ابن ولید مثال رابعه در مثال چهارم لا یقصد دومن عن نهی قصد نمی کنه از نهی کردن که خروج اسلام خروجگاه اسلام دژ اسلام رو نهی میکنه قصد نمی کنه الا دعا مگر دعا کردن برای خلیفه حارون الرشید الا دعا الرشید به این که دعا میکنه او را به چی؟ به البقاء به این که او بماند به تعیید الاسلام تعیید یعنی تقویت برای تقویت اسلام و اعلای کلمته و بالا بردن جایگاه اسلام کلمه است داره دعا میکنه که خلیفه بماند و آن بگه مبازا این خلیفه را از دست بدی ای اسلام یعنی خلیفه بماند برای این که تعید اسلام بشه، ترویج اسلام بشه و الهی کلمت. البته اون اون راشد چه نیند بوده ولی شاعر میاد اینو میگه دیگه اون اصل تخریبی اسلام رو دنبالش کرده ولی شعرا معمولا پول رو میگیرن و حرفایی رو میزنن. لا یعدمنا که حمل اسلام من ملکن تقلت او من بعد منم یه مثال از خود قرآن زدم ربنا لا تواخذنا ان لسینا او اختر پنج مثال پنجه و قال ابو طیب فی سیف دولته آقای ابو تایب در مورد سیف الدوله گفته خب گوش کنیم عبود در مورد سیف و, دوله خب مورد سیف و دوله. معمولا شعرها مثل اون قفانت که من ذکر حبیب و منزلی که تو امر دیدیم از امروال قیص شعرها معمولا میگن که ما دو نفر همراه داریم که با اونها همراهی میکنن صحبت میکنن خطاب میکنن به اونها اینجا هم متنبی داره با همون دو همراه خودش صحبت میکنه مثل قفانت که که امروالغیس به دو همراهش میگفت بیستید و التماس بود اینجا هم آقای متنبی به اون دو همراه خودش میگه میگه فلا تبلغاهو پس نرسانید به سیف الدوله او ها میخوره به سیف الدوله ای دو دوست من نرسانید به سیف الدوله ما عقولو این ما مفعول دوم توبلغ نرسانید به صیف و دوله آنچرا که من میگویم یعنی این چیزایی که من در مورد شجاعت سیف و دوله دارم میگم نرید اینها رو به سیف و دوله بگید و من دارم میگم تو میدونه جنگ اینطوری کرد و این شک، این شک، این شک. ای شک. نباید رو برید اینها رو بهش بگید فلا توبلغاهو ما عقولو مبادا یه موقع این چیزایی که من میگم برید به سیف و دوله چرا؟, چرا نگید؟ این استینا فیانی فعل نهو شجاع زیرا سیف و دوله انسان شجاعیست متا یوز کرله و تعنا یشتق اون یشتقه اون قاف کس پیدا کرده مباب قافیه شعره یشتاق و، مجزون بشه یشتاقو میشه یشتق میگه زیرا او شجاعیست که هرگاه برای او نیزه زدن و جنگآوری توصیف بشه یشتق اشتیاق بیدایی کنه فیلش یاد میگه من دارم از شجاعت هاش تو میدون جنگ شما میگم مبادر یه موقعی شما اینها رو برید بهش بگید چون بگید فیلش یاده اندوستان میکنه زود دستور میده لشکر آماده شه و ما رو به طرف جنگ میبره چون او است که هر وقت صحبت از جنگ و جنگ آوری و نیزه و نیزه زدن بشه یشتر اشتیاق پیدا میکنه به زحمت میفتیم مبادا بید این حال بهش بیکیت. این فلا از ترجمهش میشه خواهش میکنم ای دو دوست من التماس دیگه اینایی که من میگم نرید به سیف و دوله بگیدا فرد زیرا سیف و شجاعه هرگاه جنگ و جنگ آوری برای او ذکر بشه اشتیاق پیدا میکنه و فیلش یاد اندوستان میکنه و شروع میکنه اینکه جنگ و جنگ آوری ودواتشو جمع کردن ما رو را رامیم دازه پس بنابراین هیچ وقت اینها رو جلوی او نکید فلا توب نگاه درست شد نگاه کنید تو میگه و عبود طیب فلم سال الخامس انما یلتمسو خواهش میکنه یلتمسو من صاحبه از دو دوست خودش ان یک تو ما خواهش که التماس میکنه که ان یک تو ما این که کتمان کنن. انصیف دولت ماسم آه اینکه کتمان کنن از صیف دولت آنچه را که شنیدن فی وصف شجاعتهی در توصیف شجاعتشون هایی را که شنیدن کتمان کنن درست شد نگرد و فتکهی و از درهم کوبیدنش که یعنی در هم کوبید و در هم کوبیدنش نسبت به دشمنان و شجاعتش اینایی که شنیدن در وصف شجاعتش و در هم کوبیدنش دشمنان را و حسن بلاییی حسن بلا یعنی خوب از عهده مصیبت و کار در آمدن یعنی سختی و حسن بلاییی یعنی خوب از عهده سختی و جنگ بر آمدن فلحروب در جنگ ها اینکه خوب میتونه از عهده بر بیاد از عهده سختی در بیاد در جنگ ها اینا رو نرید بهش بگی پس ابو طیب در مثال پنجم همانا خواهش میکنه از دو دوست خودش که کتمان کنند اونها از سیف الدوله آنچرا که شنیدند درست شد آنچرا که شنیدند در وصف شجاعت سیف الدوله و, و در هم دشمنان رو و زیبا از عهده برآمدنش در میدان جنگ گفته مبادا اینا رو برید بهش بگیده دونست شد چرا لنهو شجاعان زیرا سیفت دوله شجاع است و شجاعان جمع شجاع و شجاعان یشتاغون ایلال حروب شجاعان سخت مشتاق به جنگ میشن متازو ذکرت لهم موقعی که برای اونها جنگ ذکر بشه سخن از جنگ بشه اینها فیلشون یاد اندوستان میکنه میگه این که به دو دوستش میگه و هازا علامات جرت بهی عادت العرب فی شعرهم این چیزی است که جاری شده است به آن عادت عرب در شعر خودشون که شعرها در شعر خودشون عادت دارن از یتخیل و شاعر زیرا شاعر خیال میکنه به ذهنش اینطور میاد انللهو رفیقین که من دو رفیق دارم یستهبانهی و یستمعانه لینشایه با او همراهی میکنن و گوش میدن به انشاد او به شعر خواندن او شعرهایی که اینو میگه بهش گوش میکنند. و یخاته با پس این شاعر اون دو دوست خودشو خطاب میکنه تل انداد به نوع مخاطب قرار دادن همتا یعنی همتا به همتا اونا رو همتای خودش میبینه دوست خودش میبینه و اونها رو مورد خطاب قرار میده خب خطاب از دوست به دوست میشه التماس و سیغت و هم مثل سیغه عمر و سیغت و نهی مطاوت جهت من اعلان الان ندهی افادت الالتماس و سیغه نهی وقتی که بیاید. آورده شود از همتایی به سوی همتایی دیگری افاده التماس، افاده التماس معناش میشه التماس دیگه نهی نیست مثل امر امرم وقتی از همتایی به همتایی بود التماس بود مثل خفا نبکنه ذکرا حبیبن و منزری که با هم خوند پس در مثال پنجم هم التماس بود و قال عبدتیب فی سیف دولته فلا تبلغاه ما عقوله فا این لهو شجاعون له کرلهو تانو یشتقی خب مثال ششم ابو نواس در مده امین عباسی میگه ابو نواز در مده امین عباسی میگه حالا این شعر رو دو بیت رو من براتون میخونم در مد همین عباسی میگه شعر میگه یا ناقو یا ناقو یعنی یا ناقتو میشون میگن منادای مرخم آه مثل افاقیمه محلن بعض ها زدت تو توی معلقه رولغیس که تایتنیس افتاده تو ندا میشون میگن منادای مرخم یعنی یه مقدار تیکه آخرش بریده شد کوتاه یا ناقو یعنی یا ناقتو لا تصمی ای شوتر من لا تصمی خسته نشو. ای شطرش میگه ای شوتر من خسته نشو. او تبلغی ملکا یه او بعد از طلب به معنای الانه یکی از جاهاییه که اندر تقدیره اویی که به برای الان باشه بعد از طلب میشه ای شطر من لا تسعمی کسته نشو او تبلغی ملکا یعنی الان تبلغی ملکا تا اینکه برسی به پادشاه خسته نشو تا برسی به پادشاهی پادشاهی که تقبیل و راحتهی و رکن سیان این جمله صفت ملکنه پادشاهی که بوسیدن کف دست او و رکن و بوسیدن رکن خانه خدا سیان مساویست چه بری رکن خانه خدا را ببوسی مم. ستون خانه خدا و چه بیایی دست او را کفش ببوسی مساویست با قول خودمون مبالاقه کرده یعنی کف دست او مثل okay. نیوار خانه خداست که شما ببوسی کب خب. این میگه چه هجر و رو ببوسی چه کف دست او یکیست پس گفت چی ای شطور من خسته نشد تا اینکه برسی به پادشاهی که این صفت رو داره بوسیدن کف دست او و بوسیدن رکن خانه خدا یکیست و رکن سیان سیان خبر تقبیل خب این شعر از نظر محتوا شعر است یعنی بقول خودمون مبالغهی کرده که غلطی است. شاهدش کجاست سر لا تصعمی لا تصعمی خنی خسته نشوی شد منظورش یعنی کاش خسته نشه ای شطوره من کاش تو خسته نشی تا وقتی که به پیشگاه پادشاهی میرسی که چه دست او را ببوسی و چه خانه خدا را ببوسی یکیست بعد به شطوره میگه میگه متا تهوتی تهوتی یعنی تنزلی پایین بیاری متا تهوتی الیه یعنی پیش این پادشاه ملک ار هرگاه هرگاه پایین بیاوری در پیشگاه او ار رحل بار خودت رو یعنی بارت رو اگه اونجا زمین بذاری یعنی برسی به مقصد هرگاه در نزد او بار خیش را زمین گذاری پایین بیاری سالمت هم آه در حالی که سالم هستی بارت رو اونجا زمین بذاری به سلامت بار خودت رو اونجا زمین بذاری تهدی فعل شد تستجمعی جزای اشاره تستجمعی الخلق فی تمثال انسان الخلق یعنی المخلوق الفلام داره یعنی همه مخلوقات تستجمعی جمع می‌کنی همه مخلوقات را فی تمثال انسان در شکل یادم میگه هرگاه بار خودت رو در مجد او سالم زمین گذاشتی خواهی یافت تمام مخلوقات رو در شکل یک انسان یعنی <تصفيق> <تصفيق> آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی دارد اگر به سلامت پیشش برسی و بار اقامت رو به زمین بذاری حتما و حتما اونجا همه مخلوقات رو در شکل یک انسان خواهی دید که منظور همون همین اباضی است خب اون بیت دوم ربطی به موضوع ما نداره فقط داشته تعریف و تمجید از های امین عباسی میکرده شاهد ما رو اون یا ناق و لا است که لا یعنی خسته نشو و منظور اینه که ای کاش خسته نشی اون او تبلوغی هم گفتیم تبلوغی منصوبه یعنی او ان تبلوغی یعنی ان تبلوغی ملک تا این که برسی به پادشاهی که تقبیل و راحتی و رکن سیاد بوسیدن دست اون کف دست او و رکن خانه خدا است، بعد میگه متا تهوتی علیه رحله رحله یعنی رحله که بار خودت رو بذاری زمین پیش او علیه سالمتن در حالی که تو سالمی به سلامت برسی و بارت اونجا بذاری زمین یعنی وقتی بهش برسی اگر برسی پیش او تستجمی الخرق جمع خواهی کرد همه مخلوقات رو به تمثال انسان در شکل انسان. یعنی آنچه همه دارند این به تنهایی داره آنچه همه خوبان دارند این به تنهایی داره. این که میگه که کف دست او رو ببوسی ها قبلا این کف دست رو میبوسیدن چون اون کسانی که عطا میکردن کرم میکردن اون کیسه پول رو کف دست میذاشتن میدادن اون شخص بر و جای اون رو بوس میگن یعنی کف دست بوسی آه کف بوسی در واقع به این معنا بود اینم که میگه کف دست او را ببوسی و رکنی رکن یمانی رو ببوسی یکیه یعنی وقتی بیشه اون برسی عطا و کرم به و تو کف دست او رو ببوسی در مقابل عطا و کرمش عین اینیه که رفتی خانه خدا رو بوسیدی و مزد گرفتی خب نگاه کنید توی متن و ابونواس فیل ابو مثال 6 ان ما ابو ابونواس در مثالش 6 همانا آرزو میکنه ان تتحملا ناقته مشاء قسفر اینکه همانا آرزو میکنه اینکه تحمل کنه شطورش ان تتحمل ناقته توو مشاق قصفره، مشاق سفر رو تحمل کنه، و الا یانزله بهها از سامو، و ان لا یانزله که شده الله یانزل، و الله یانزله بهها از سامو، و به او خستگی نازل نشه، حتی تبلقه یعنی ایلاع انت تبلق، حتی تبلغ دیار الامین. تا برسه به سرزمین امین عباسی هم برسه به این پادشاه فطر آنجا کرد پس ببیند این شطور در آنجا کیفه جمع الله العالم ببیند که خدا چگونه جمع کرده همه مخلوقات رو الخلق نه همه مخلوقات رو جمع کرده فی صورت انسان در شکل یک انسان. تو اونجا برسی این رو خواهی دید پایین نگاه کنید ار راه الکفن و روکن یوریدو بهی روکن الحتیم بین قال عبول حالا جناب آقای عبول در این شعر عبول علای مردی میگه؟ میگه ولا تجلس الى اهل دنایا و این نخلا اقصفه های تودی جلسه اله جلسه الى. با جالس است جالس تو زیدن یعنی باهاش معاشرت و مجالست کردند جلس تو اله زیدن هم یعنی با او معاشرت و مجالست کردن پس جلسه با الا به معنای جالس است میگه ولا تجلس الى اهل دنایا دنایا جمع دنیه است یعنی پستی دنایا جمع دنیه است یعنی پستی میگه ننشین هم نشینی نکن با اهل پستی ها اونایی که خلق و پست دارن بخیلن حسودن بدبینن با اینها نشین ولا تجلس الى اهل دنایا این فعی یعنی زیرا استیناف بیانی زیرا فعی نخلاق و صفه زیرا خلائق جمع خلیق است یعنی خلق و خو سرشت زیرا خلق و خو و سرشت انسان های صفی اهل دنایا این صفه خلق و خوشون توعدی سرایت میکن. اصلا عادی یعنی سرایت میکنه اصلا مرض اون معدم یعنی مرض اپیدمی مثل همین کرونا که سرایت میکنه معدی یعنی سرایت کننده اپیدمی میگه ولا تجلس الی اهل دنایا نشین با اهل پستی ها یعنی با اونهایی که اهل پستی هستند هم پیاده رفت آمد نداشته باشم، هم نشینی نکن. زیرا ان این نخلاق قصفه ای تعدی. زیرا خلق خوی انسانهای خوی انسان های سرایت میکنه. خلق انسانهای صفی انسان های سرایت میکنه. پیغمبر خدا هم میفرماید در روایتی که شده المجالست و معثرتون. مجالست و هم نشیبی تحصیل حالا نگاه کنید ببینیشون توی معطلش نمید میگه و عبالالا فی بیتهی عبالالا که میگه ولا از نشین با آدم های پستو آدم های صفی چیه؟ قصدش اینکه اگه ما ما رو محاکمه کنه؟ محافظه کنیم؟ نه نصیحت داره و عبالالا فی بیتهی این نما ینسه ها و ها و یرشده ها اولالا در بیتش همانا نصیحت میکنه مخاطب خودشو و ارشاد میکنه او رو به اینکه دوری گزیند از صفه و اهل دنایا از صفه و اهل دنایا دوری گزینه از اونها خودشو بکشه کنار خب اینم مثال ارشاد و نصیحت اما توبیخ درست شد مقال ابو الاسود دو علیه اسود الاسود دو علی پایین آشیه نگاه کنید این واقعا اینجا داره این اعتراف رو میکنه میگه حوض زالمه ابن امر ابن ظالم من قبیله دوعل میگه این شخص زالمه ابن امر ابن ظالم از قبیله دوعل هستش که منصوبه به اون میشه دو علی دو این منصوبه به اون میشه دو علی کان شاعرن مجیدن شاعر بسیار خوبی بود و فقیحن محدثن فقیح بوده به اهل حدیث هم بوده محدث بوده حدیث نرمیشه و فارسن شجاعن و سواری شجاع بود از سواری صحب علیان و شهدم احوس فیلن همراه همراه امیرالمومنین بوده، از صحابیش بوده و در جنگ صفین در کنار امیرالمومنین با معاویه و امراص جنگید. و هو اول من ان النحو این مؤمن میگه این اول الاسود دو که شاعر حدیثه اولین کسی است که تعلیف کرد نحو نحو از ایشون شروع اما نه که عقل خودش میرسید نه نه و هوه اولونن وزعن نه و به اشارت علی رضی الله به اشاره امیر امیرالمومنین امیر الممنی گفتش خوبه که ما یک قبائد و گرامری داشته باشیم که مردم بتوانند کلام خدا رو بفهمند بتونند عبارات قرآن رو درک کنند آ لذا قواعد و گرامری بنویسیم به این گفته شروع کن این رفتش شو. حروف مشا برتون بالفل رو پیدا کرد 5 تا اومد گفتش که این 5 تا جور کار میکنن یعنیا موقع نمین نصف و رفع و اینها هنوز اصطلاح نشده. این 5 مثلا رفت به خبر میدن نصف به اسم. امیر موقع این بر بودن 6 تا و ضعفی لاکنرم بذاد 6 تا. و شروع کرد جمع اسم و فعل و حرف و بعد دیگران آمدن سیب و, و بعد هم کسایی و بزرگان نهر پیدا شدن مکتبهای نحوی تا اینجا که الان شما دارید میگوند پای قضار علم نهر شریف است امیر المومد <تصفيق> و هوا اولو من وضعن و به اشاره تعلیقیم وضع الله هست و تو با سنت و تو وفیه سنت هست خمسل و ستیم سال شست و پنج از دنیا حالا ببینیم آقای اولا اسود دو علی چه میگوید میگه لا تنها یه نفر بکن یا آقای میگه لا تنها ان خلقه نه نکن از یه خلق خوب و تعتیه این واف بعدش ان در تقدیره در جواب طلب نه بهش میگم واوه معیت، کل مزاره بعد از واوه معیت در جواب طلب منصول میشه به عنه مقدره یعنی معن او به معنی معست بعدش ان در تردید لذا و تعتیه مثلهو مثلهو یعنی به مثلی میگه لا تنها ان خلقه نه نکن از خلق خلقهوی با اینکه می آوری خودت مثلش شو به دیگران میگی بد نباش خودت بد دیگه به دیگران میگی حسود نباش خودت حسود به دیگران میگی ماخ نداشته باش خودت باخیل میگه نه نکن از یه خلق و خوب. با اینکه خودت داری رو انجام میدی میشه به اینجور به مردم نگو دروغ نگی مردم رو نه نکن از دروغ گویی با اون که خودت داری دروغ میگی خب این توبیغش میگیم می آه. نگو به مردم دروغ نگید با اون که خودت داری میگی، خب اینطور به یه نفر بگیم توبیر خوشه دید. لا ان خلقن و تعتیم اصلاهو چرا؟ چرا این کارو نکن؟ میگه آرون علیک ننگ است بر تو اضافه علته یا آرون علیکه یعنی حاضا آرون علیک این کار ننگ است بر تو اونم عظیم صفت آره ننگیست بر تو اونم ننگی عظیم اضافه حالتر اگر انجامش بدی اگر این کارو بکنی ننگه بر توه اونم ننگی عظیم که چی؟ که تو آمدی دیگران را نه کردی از خلق و خویی با اون که خودت داشتی اون را انجام میده آیا این توبیخ نیست؟ ما به یکی بگیم نگو به مردم دروغ نگید با اون که خودت داری میگی. و میذارید و هر کی اینو بدی تاریخ بزن لا تنها و, و تعتیه یعنی و تعطیه یعنی ما تعطیه یکی از جاهایی که ناسبه در در تو موادی خوندید همین جاست بعد از واقع میهیت در جواب طلب و تعطیه مثله او مثله او منسوب به نزل خافزه یعنی و تعطیه به مثلی عطا یعنی آورد و به مثلهی یعنی انجام میدی خودت مثلش یعنی و تفعلا مثله آرون علیکه اضافلت قصیب نگاه کنید تو منت میگه و عبالاسود این نما یقصد و توبیخ عبالاسود همانا قصد داره توبیخ منین هنناس توبیخ کسی که نه میگرده من اون رو انسوق از فکر بدی از کار بدی مردم را از سو نه می کرده آه. از خلق و خوی بدی نه می کرده ولاین تهی اما خودش دست نمی ازش انتهای یعنی انه دست کشید مردم را نه میکرده در صورتی که خودش از اون دست نمی کشیده. به او چنین گفته لا تنه ان خلقن و تعتیم اصلاهو آرون علیکه این آرون خبر مبتده محضوب ده ها. یعنی هازا آرون علیک استیناف بیانیه زیرا این کار ننگ است بر تو ننگی عظیم اضافه حال اگر انجامش بده اگر این کار بکنی این ننگ بر تو اونم ننگ عظیم خب نوها نگاه کن میگه که قال آخر شاعر دیگری گفته لا تعرضن لجه افرین به ندا یدهی هفلستامل اندادی این توی بلاقت یک هم با همین بیت رو خوندیم که جعفر برمکی رو معت میکرد و به دیگران میگفتش که خودتون رو در معرض شباهت با جعفر برمکی قرار ندید در کرم دو دستش مبادو بیای خودتو با جعفر برمکی متشابه کنی در کرم دو دست او هم که میگه کرم دو دست یعنی کرم بی که با هر دو دست میده زیرا لست من اندادهی زیرا تو از همتایان او نیستی مثل که کسی بخواد بنشه بره با یه پهلوانی کشتی بگیره اون میگه, میگه بیشی بیشی دارو تو چنان تو یونی حریف اون بشی بشین سجاد ها کجا داری میری بشین هیچ وقت با امطایونی نیستی این تعییسه معیوس میکنه اونو درست شد نه معیوسش میکنه از اینکه او بخواد درست شد نه من مثل که مثلا تو امتحان درست شد. تو امتحان من بره ها رو هنوز ندادم درست شد بعد بر میگم سوال نکنید سوال نکنید واضح سوالات این که میگم سوال نکنید سوال نکنید نگ میکنم خوشو سوال نمیکردی که ته. این میخوا شما معیوس کنم از سوال کرده که دیگه سوال دوزات شما نباشه درست شد این هم به همونه میگه لا تعزن نه از با لام که میاد یعنی اینکه در یکی مثلا بیاد خودشو در معرض یکی قرار بده پوز بده در مقابلش خود نمایی کنه ارزندام کردن بهترین جمله است ارزندام نکن در مقابل جعفر برمکی به اینکه شبیه میکنی خودت رو به کرم دو دسته او زیرا تو هرگز همتای او داره با این کار او رو معیوسش میکنه از این کار درست شد لا تعارزن لجعفر جفرن متشببهن به ندادایی فلستم انداری. ده میرم تعییس بود ده که دیگه مشخصه یه نفر به خادم خودش میگه. یه فرماندهی به زیردست خودش میگه. میگه لا ت تاصلاموی. آ دو تنددم اینجا قرینه اون نوع مقول خودمون گفتنشه. حرف رو گوش نکنی یا؟ اینطوری؟ با این tone صدا و این قرینه حالیه معلوم میشه که داره نه تهدید میکنه. یه حرف من مرا گوش نکنی یا لا تمتسل امری. امتسلا یعنی اطاعت. لا تمتسل امری یعنی لا تو تعمری. امر من نه اطاعت نکن یا امر به گوش نکنی یا تهدید دید. تقول و تقول زالجل من هو و. مبادا حرفو مرا گوش کنی یا داره تهدید میکنه. یعنی گوش نکردی گوشتو میبرد. رو سو دارم دیگه <تصفح> لا تمتسل هم. اینجا قرنیش خریمه حالی است چون با اون تون صدایی که داره میگه چنین بهمیده بشه لا تمتسل هم. مباده حرف من رو گوش کنی ها. و قال عبود طیب یهجو و کافور اخشیدی پادشاه مصر قلام بود قبلا گفتم و اخشید اونا خرید ولی چون شجاع بود و قلدر بود و اینها داماد اخشید شد و بعدم جای او پادشاه مصر شد غلام. این کافور اخشیدی معاصر با سیف است و رقیب سیف هم هست یعنی با هم مخاسمه داشتند دشمنی داشتند متنبی موقعی که پیش سیف و بود به این کافور اخشیدی که بنده بوده و غلام بوده تحقیر میکرد یکیش اینه میگه لا تشترل عبد بنده نخر یا غلام نخر الا مگر ملعصا معهون مگر در حالی که چوب دستم با خریدی ولعصا معقول ولعصا معه است بر اون العقد هیچ وقت قلامی رو نخر مگر در حالی که چوب دستم با او خریدی چرا چون میگه ان لعبیده مناکید انجاس جمع نجس یعنی پنید. مناکید جمع منکود یعنی بیخیر و برکت میگه زیرا که اونامان آ، این بردگان پلید هستن بایه نولام تاکید کرد شک نکن قطعا اینطوره که این قلامان این اندالعبید استیناف بیانیه بایه نم آورده تحکید میگه که خوندیم که اینجا در واقع خروج الخبر، ان مقتضا ظاهر حال شده درست شد؟ و بخاطب خالی و ذهن او را طالب فرسیده با عداد تحکیدی مستحبی آورده چون کلام قبلی اختزایی سوال میکرده لاتشتره که گفته بود نخری یا بنده مگر چوب دستم باش بخری انگار اون ذهن شده چرا چرا چوب دست لازم بری میگه چون بندگان بردگان افراد پلید و نجسی هستند و بیخیر انجاس خبر اول منافید خبر دوم برانیم اینها افراد پست و بیخیر و برکتی هستند آدم باید حتما ویلا آدم رو سوان آدم میشه بر رو عبیده جمع عبد لانجاس و منافید خب این شعر دستش از این که به سیف و دوله گفته که بند نخر مگر هم باش به دستش این بوده که اون آقای کافور رو تحقیر کنه دیگه والله این نبوده که حالا این مقامش پایین سیف و ودول بالا داره دعا میکنه درخواست میکنه میبینن نه دستش تحقیره آقای کافور اخشیدی است برای همینم هم دنبالش میمیگه و الا اگر بنده خریدی تو سرش نزدی مثل کافور اخشیدی میاد سوار میشه تو رو کنار و مملکت رو به دست میگیره و پادشاه میشه جاد. اینها آدم هایی نیستن که نمک رو بخورند و نمکدون رو نشکنند، بلکه اینها بیخیر رو برکت. توی اون مطل کتاب هم میگه به عبول اسفد انما یخصد و توبیخ منگرها انلاسه انسو و لاینتهی اند و یخصد و آخرون بی امثلت سلاست الباقیت علت تاییز تیعیز معیوز کردن و تهدید و تحقیر علا تهدید بحث معهی تمام شد و من داشتم واقعا نموزج رو هم امروز بخونم ولی خب حالا دیگه این مقدار رو تخلیف میدیم پیشا پیش سال نور رو هم به شما تبریک میگیم که من مخوام نموزج رو که انشالله در اولین جلسه بعد از ایام اید برای شما خوندم درس هم رو نهی تکرار بشه که اون کسانی هم که حالا خطا کردند و نیامدن بهره لازم رو ببرند درس تکرار بشه و درس بعدمون که استفهام هست رو انشالله شروع کنید انشالله که سال خوبی داشته باشید خودتون رو حفاظت کنید و در پناه خداوند موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و